فیلم. یکی میخواد باد حرف بزنه نویسندگان منوچهر هادی و سعید دولتخانی کارگردان منوچهر هادی بازیگران آنان نعمتی لیلا نادری اماده کارات لازم باش تاان سر دنیا می. شهاب حسینی مستفا بقاایی با بدبختتر مجب باشد مغازه شد سی میلیون هرراش بزن. موازه کردم یه میلیاردم نکنیده همید ضااپگاه دکتر علی ضا دختر با تخین او زنگ زن مزورده کم دیر تربیه. یک تاناصر هنگامه. من خودم شاکی هم ازش اصلا نمی خواهد میشه ببینم حانی قرامی یاسمن آخه چند بعد بدقولی کردم دیگه روم نشد موسیقی حامد ثابت تهیه کننده فرشته مهتیزاده رگه های تند درخت شاخه های زمستونی یه دختر نوجوان با شال و کلا والای تپه تک و تنها چی کار میکنه تو این سرما او نه یه زن دیگه هم هست البته اون چرا بی حرکت رو فرش کنار ماشین نشسته آخه اینجام جوی پیکنیکه دختر نوجوان سوژه جدیدی را برای عکس پیدا کرده. همون خانمی که گفتم. ای این خانمی داره یه چیزی می نمیسه. وای یه برای یه هم کنار بساتشونه که بگی جایی بسته شده. نه این خانمه حواسش به دخترم هست. حتی حواسش به تلفن همراه دخترم هست که تا زنگ زن بر میزنه برمیداره نگاهش می‌کنه که کی زنگ زده. دخترم که سر به هوا هی از آسم رو میگیره زن فوری گوشی خودش رو میاره و شمارهی که به اسم آرزو تو گوشی دختر زنگ زده تو گوشی خودش وارد میکنه بعد این تماس رو از تو لیست تماس گوشی دختر پاک میکنه تو فکر فرو میره و دوباره شروع به نوشتن مامان بای بای کن حالا <تصفيق> ماشین رو ملصد. اون ببایی کوچولو هم تو بغل دختر جا خوش کرده آجی جا درد میکنه اون دستش پاش نیست ماما چیز شده؟ چرا دیگه ناراتی؟ چرا راست میگه؟ ناراحتی دیده با این اخما. دختر که فضا رو سنگین و ببعی رو میفرسته صندلی عقب و باز بند دوربینش رو دور گردنش نمیخوای اکسامو ببینی پشت فرمو بعد از اینکه سواشیم هم گفتم گفتید بعد حالا وقت زیاده پس میگی، وقت زیاد دختر بند دوربین رو از گردنش بر میداره و لبولوچهش حسابی آویزون و میره تو تا گوشیش زنگ زنه چنان زن عکس العملش نشون میده که دختر تعجب میکنه. زنگو قط میکنه و گوشی رو تو دستاش سفت فشار میده و به نقطه خیره میشه. واضاحمه؟ نه، آرزوئه. سونی عکس تولدشو میخواد. حالا بریم خونه، رایک میکنم زنگ میزنم بهش. خب گوشی تو جواب میدادی همینا رو بهش میگفتی. آخه چند بار بدقلی دیگه روم نشد. این آرزو کیه؟ آره واقعا آرزوئه. تو همین فاصله دختر یه پیامک میده به آرزو که الان نمیتونه حرف بزنه شیطون با دست بردن به دهنش و دندوناش بزار رو عوض میکنه دسته تو در از دهنه اونی که پر کرده درد میکنه نه اونی که میخواد پر کنه چند جلس دیگه باید بری بکنم دو جلسه دیگه خسته شده برو خونه خودم میرم من باید کارتو لازم باشه اون سر دانیا بید با این حرف ز زن دختر رو از اون رد میکنه ولی خودش نمیده این دختره با تخخیر اومد زنگ میزن مجزویده یکم دیرتر بیده. مردم که از لایی کهی کهی کهی داره این دوتارو میکرد. سلام سلام خانم میمیندیر کردی اجازه های از خورتون سلام آقای دوستان زن تو ماشین از گوشی دختر شمایی آبس رو میکرد گوشی آی دکتر رو زنگ البته آقای دکتر زنگش عنور باش کن چرا گوشت جواب نمیدی؟ آخه مریضم مهمه، باش کن. من که مریضت نیستم، شدین که زنگ میزنه مریضاته. کمه دیگه. چش. بله. شما تماس گرفتین، من خودم معرفی کنم؟ من بعد بگم شما. احوالتون چطوره؟ خوب هستین؟ منو شناختی؟ دسته شما درد نکنه دندون پیزش که دخترتون به جا بردین؟ الو صدا مدرین؟ آقای دکتر از لای کرکره ها میبینه که زن از مشین پیاده شده و به سرعت داره از قیامون رد میشه واجد داستانی بشه دکتر بدجوری به هم ریخ ده. یه واسه پنبه بگیر خونم اسم میگه دارین تو کمد یه واسه دیگه بگیرین. باشه. سر شو؟ منم شماره تو رو کجا داشتم؟ منم توش نیدیم. زن با شیتا در شیشه ای ورتاکو باز می یه نگاه به دختر، یه نگاه به دکتر. چی شده بابا؟ مادر دکتر حسام دختر تو ماشین بابایی رو بغل کرد. جفت سنگینه. نمیخوای چیزی بگی؟ آخ بزنم هوا میله دهنم دندونم تیه میکشه. بهونه خوبی نیست و صرف نزدم. چه بهونه ای مامان جان. میبینی که رو پر کردم. و درد نمیکنه که نتونی جواب بدی. تو همین چند کلمه که حرف زدی میتونی جواب منو داده باشی. مجبور شدم همین چند کلمه هم گفتم. جواب بده اصلا سوال نکردی که جواب بدم. سوال نکردم خودت نباید بگی. چی باید بگم؟ توقع نداشتم ازم چیز رو پنهون کنی من هم توقع نداشتم گوشیم رو چک کنی اینقدر ازم قایم کردی که مجبور شدم شما کار درستی نکردی من نگفتم کار درستی کردم به خاطر یه رابطه ای که از پای قلطه هزار تا دروف سرهم کردی آرزو علی رضای دیگه باشه یا سمخم باشه یه را میان خونه خونه که چه عرض کنم ویلای کنار دریا از شانسشون امشب سن دختر پیاده کرده خودش داره کجا میره خیلی عصبانی بله اومده دعوا با آقای دکتر آقای دکترم که لباساشو پوشیده و آماده رفتنه دفهم چای میدونی یا نسکافه؟ نه میدم این جزم پذیره تعروف من منیش احترامه شما الان من. مهمون منیم مهمون نیستم مادر دختری هم که باش رابطه داری بفهمی بشی می گوش میکنم نشستم میتونی گوش بدی و ایستادم میتونم چون چی میذونی همه چی یعنی هیچ چی نمیذونی خیلی بده که از من خواستگاری کنید نه که شنیدید بری سراغ یاسمین دختری که 20 سال ازتون کوچیک تره شما داری اشتباه میکنم؟ اشتباه میکنم اصلا به چه حق با یاسمین رابطه داری؟ شما جون منو ثابت کن بعد ما خجالت بکش زشینکار. کدوم کار؟ به اسم من تو یادت دیدی بزنی زیرش ها؟ زیر چی بزنه؟ شماره‌تون تو کوچه یاسمنه. این یعنی چی؟ اسمتون تو کوچه صدا و این یعنی چی؟ یعنی با هم دوستید. با هم زنگ میزنید اس ام اس می‌دید، همدیگه رو. همه شما داره تهمت می‌زنید. هم به من هم به یاسمن. تهمت می‌زنم؟ خاطر این خاطر که یاسمن خواسته واسطه بشه. تو شما به من جواب وصلت حالا دیگه زن نگاهش رو از روی زمین نمی‌تونه برداره. ازدواج ما قرش خیلی باه. بیشتر حالا با آرامش را ندگی میکنه یا با اخمای درخم یکی یکی اکسای امروز تو کامپیوترش رسد میکنه مادر مهربونم رسیده خونه <تصفيق> تو هنوز نمیدونی وقتی من میگم نه یعنی تموم چه ذارم رو عوض نمیکنه ؟ چون فکر می بعد میگم نه من اینکه اول بگم نه بعد فکر کنم. اگه با ازدواجش میخواستم خوشبختشم می شدم. خوشبختی پیش کسی نیست که من بیفتم دنبالش. وقتی به همه میگم نه یعنی واسطه شدم بیفاید است. بعدشم تو نمی گیر رو بیا اجازه کاری کنی؟ نبد پنهون کاری کنی؟ دواد کنم چون می دانم چرا کار کرد از دلت خبر دار چی گفتی به علی هیچی گفتم زندگیشو کنه. دیگه هم حق نداره با تو رابطه داشته باشه تو هم همینطور علی آدم خوبیه دیگه عرفشو نزد خودت یادم دادی پایش چیزی که میخوام باعثم آره اما یاده ندادم تو زندگی دخالت کنی هر جا لازم باشه لازم با شده منم بحث می‌کنم مشورت می‌کنم تو فقط باید فکر درسته باشی منم وظیفه‌مو که ازت به عهده دارم مامان من نبودم بازم بهش میگفتی نه ماما خانوم با شما میگم اگه من نبودم بازم بهش میگفتی نه من راضی ام ازدواج کنی اگه تنها بمونی یعنی دوست هم نداری پس تو هم نداری چی تو ذهن و دل این زن میگذره که نمیذاره بخوابه. قم تمام صورتش رو پر کرد یه سبونه بخوری هستم زن آمده است که به سر کار نمیشنم نه؟ دختر با برش بازی میکنه و اعتنای با مدرش نداره زن حسابی تو فکر و نگران دختر با در درهم برای دختر نون و پنیر درست میکنه و تو پلاستیک میذاره. بختر طبق معمول لبایچاش آویزونه و فقط انگشتش رو روی شیشه ماشین میکشه بگی بزا تو کولت زنگی تفریه بخوردی شام نخورده با تو هم به زور و اخم نون و پنیر و آب میبر از مادرش میگیره و با بیمیلی میذاره روکیفش نگاه شما تدگر مادر همچنان ادامه بچه ها کلاس رو گذاشتن با سره اما خانم مرنب خیره شده که بیرون انگار هیچ کلون وزی صدای رو میشنده با صدای زنگ اون خوشحالتر از بچه ها از کلاس میبره چه لیلا لیلیا؟ قربانه؟ بسرت چه خوبه؟ این هفته آمازشش تمام میشه باید پیش ما چه خوب، پس از تنهایی در میاید فقط چه روز؟ اونست؟ دفتر کجاست؟ صبح مدرسه بود سری که راست؟ مریض شده دایینه کرده؟ نه ما صبح هم اومدیم دانش آموز یا سمن یا سمن بقایی بیا دفتر لیره دلنگران سوار ماشینش آرها میفته سلام من و خونه نیستیم لطفا پیام بذاریم حتما ها حتما با اتون تماسو میگیریم خرافه الو یاسمن یاسمن یاسمن گوشی رو بردار یاسمن با تو هم گوشی رو بردار یاسمن ببین با من دلی چی کار میکنی گوشی رو بردار نیاد خونه چوبیشون یا یاسمم یاسمم در باز کن نمیشنوی؟ یاسمم با تو اندر باس کن کاری دو جهر که مدرسه تو بل میکنید باس کن در رو یاسمم در رو باس کن قلبم داره میزنه دیگه میخوایم تو رو بمونی مگه دستم بهت نرسه میادو لب پله هم میشین در درباز شد ما که ساده و بیخیال تیم. بدم میگم دور اردشی فقط جوی سیلی مادر رو صورتش نخ. با تو. آره؟ با یستی شب تو رو باهم قلط کردیم. واسه اینکه می خوام آره؟ کلال شدی حرف نمی با تو؟ دوست‌عم نداری. اگه دوست‌عم داشتی طلاق نمی گرفتی. اگه با یوزگل زندگیم کردی، موقعو سر داشتم آره؟ اگه یوزگلو چرا زنش شدی؟ با این حرفا تکرار می خای به چی برسی؟ به حقم. اگه به سوالون درست جواب میدادی دیگه واسه همش نمی نمیگفتم من که نبودم ببینم حق ما کیه کی راست میگه کی دروغ کی مقصر کی نیست برگاله برگاله یوسابجون خودت رو نشون میدی دیگه اسم منه نمیاری فهمیدی دارم سوال میپرسم جواب میخوام من دیگه می مادر شما نیستم مادر خانومای ما شما. ما شما کجا داری میری خفه شو رو بده افسن من فاطمه زادهم جواب میخوام مادر خودت به من دیدی دیدی جواب نداری معلوم میشه که شما مقصر بودی نه بابا واگرنه جوابمو میدادی من مقصر بودم آره دیگه اگه مقصر نبودی بعد جوابمو بدی جواب میخواد بشین تا بهت جواب بدم تا رو حامله بودم که بابات شک کردم مثل مرده شده بود که دو تا زن داره هرچی بهش گفتم زیر بار نمیرفت گفت تو دیوونه شدی میخواست منو ببره پیش روان شناس تا اینکه مشتشو گرفتم و ازش شدم که خیانت یعنی چی تاکی بودی ازش شده نمیشدی؟ با تو تو اگه بودی بازم زندگی میکردی؟ شاید شاید میبخش آره اگه من بودم میبخش چرا؟ چون عاشقش بودم دوستش داشتم آدم نمیتونه عاشق هر کسی بشه اون آدم اگه آدم نباشه چی؟ پس نوابه اشغرش میشد یا واش ازدواج کردی؟ آدم مگه علم قیب داره؟ تا با کسی زندگی نکنی نمیتونی بشناسی. پس اول باید میشناختیش وقتی مطمئن شدی منو به دنیا آوردی. یعنی من اشتباه کردم تو رو به دنیا آورده؟ آره. من دوست ندارم بچه‌ها هی به بگم بابات کجاست. اصلا چرا نمیذاری من ببینمش؟ حتی نازشتی عکسش رو ببینم؟ تو هم مشکلی داری به خودت رب داره اما حق نداشتی ما رو از هم جدا کنی. فهمیدی خانه خونو حق نداشتی. دیگر نسته نه دارم یاسمن حرفاشو میزنه و میره بالا تو اتاقش چقدر خوبه که این دریا هست وقتی آدما در میمونن میرن کنارش لیلا چشم روخته به دریا صبح لیلا خانم معلومه که خودت هم متوجه نشدی که خوابت برده ببینم یاسمن کجا سر و صدایی ازش نیست یاسمه یاسمه <lavoro> <snapsbows> من تو دوست دارم عاشق مادرتم تو رم دوست دارم از اینجا سیاسمه خانم دوست دارم دختری مثل تو داشته باشن یه خانواده بشیم خانواده که همه حسرتشو بخورن ولی مادرت نمیخواد چرا همقدر اصرار میکنیم وقتی نمیخواد من که نبتونم مجموعهش کنم خانم شما باید حتما با من باش کنیم نمیخواد دیگه من هر توش شده شما دو تا رو باید دم برسوام با این کارتون رو از خودت میرنجونی من وقتی تناس رنج میبرم اون با توه زندگی رو با تو دوست داره اون منو من نمیبینه هیچ کس رو نمیبینه همه چیش توی اشتباه میکنی اون تو رو دوست داره این من دوست داره نه دوست داره من میفهمم دیگه چی جو جو می‌فهمی چی دیدی؟ ببخشیدا فکر مامان مامانمه دیگه اینو نفهمم که دیگه هیچ چیزی که. ما اگه دوستش انقدر مقاومت نمی‌کرد. مقاومتش به قدر منو بیشتر دوست داره. با وقتی منو بیشتر دوست داره دلیل نمیشه که تو بعدش بیاد. خب حالا بعد چی کار کرد؟ بعد جنگید. دست درد نکنه خیلی خوشمزه بود داشم می‌مردمه گشنگی. نوش جونت. ببینیم مشکل چیه؟ خوشگه این که مامانم به خاطر من در حتو میگذاره و منم نمیذارم این اتفاق بیفته چونم تو رو دوست دارم هم مامانم دوست دارم موازه باشی نذاری تنها رو بمونه آخه اون همه این ساله رو به خاطر من ازدواج نکرم خجرت کشیدی بابایی؟ یاسمان یاسمان یاسمان الو یاسمان اونجاست؟ یاسمان اونجاست یا نه؟ شامس اینکه هر فالی تو نمیشه چند دفعه گفتم نمیخوام یاسمانه ببینی مگه نگفتم بشنگو را اینجا؟ چرا گفتی؟ نگفتم اینجای خودم شنیدم یاسمان؟ یاسمه خانم سلام دکتر سلام دکتر گوشی یاسمه رو که جامونده میبره بهش بده میره تو بالکن صداش میزه یاسمه دختر وسط خیابون چرا برمیگری؟ یاسمه یه موشی باید سرعه میاده موشی تو جا گذاشت دکتر به سرعت میاد پایین تو خیاب اون بارای سریع سمن ماشین بایی فرار میکنه و دکتر دنبالش میدوه اما بهش نمیرسه لیلا مرسه مره ای کرم ببینه. میبینه که یه عالم آدم سریع برانکارت رو گرفتن و دارن میبرنش سمتان پرامس دکتر علی رزام هست چشمای لیلا از ترس دارن از هدقه در میان فقط لیلا میدام لیلو, می لیلو مواظب باش مواظب باش چطور از خیابون رد میشی اکسیژن داره واسه اون درست میشه. دکترها کار خودشونو میکنن، لیلا از ترس قالب کرد چشمای دکتر علیرضا هم قرمزیه. ای خانم، اینجا میمونن تا دکتر برای تشخیص قطعی بیاد ببینمش. دکتر کی میاد؟ میاد، یه کاری براشون میومده، رفتن کنه بعد میگردن. یانا نمیشه، میاد. هر روز پیش داروخانه اورژانس این حفه به لیلا میزنه، لیلا همه ی وجودش رو میزه. بکتر اهلی بزن برای سریع سرمش است خیالت راحت شد رخوت تو کردی اگه بلایی سر بچم بیاد میدونم چی کنم مگه نگفتم دست از سر دختر من بردار مگه نگفتم دست از سر من زندگی بردار ایش به همزه ایستم جواب میمیددی همونگونه همزه ایمیددی میگفتی جواب ندادم. بسه میستم این هاشی نمیستمیستش بسه میستمیستشم جواب ندادم بردی این ساید اومد مده بینم کشش پس این دکتر که میاد الان پیده شو میشه یعنی همینجوری محلیزشو بیل کرده رفت و دنبال کار شخصیش خانم شو بگوند دکتر اگر بیاد کار خاصی انجام میده من رفتم دخترتان بیدم حالش خیلی بده سطح بوشیریش پایینه شما اگه میخوای دختری زنده مونه ببرش تاگیر ببرش چی بابا ماشینات می بشه بشه شما کی راتمه این باشه من تهران دکتر دیو آزاد ترین نمو می تقریبا شهر من چیکارش شما دکتر نی دکتر می باشه نمی چه وجدان میگم اون وجدان نمی فقط ته وجدان دکتر هیچ که وجدان دکتر به وجدان دل لیلا تو آمبولانس بالای سر یاسمن و علیرضا با ماشین دنبالشون میگه لیلا دست یاسمن رو ول نمیکنه و مدام میبوسه نشون علیرضا به یه نقطه خیره مونده و اون طرف در لیلا روی نیمکت نشسته دکتر بیمارستان لیلا رو صدا داره با لیله حرف میزنه که یه دفعه لیلا از حال میره و زانوش سرست میشن و میفته رو زمین. علی رزانو نداره سمتش می نفس کشی داره دخترزون بخاطر دستگاه اگه این دستگاه برای چند دقیقه قطعه بشه باعث ایست قلبی میشه اون وقت بقیه ازش هم از بین میره اکثر آدم با مرگ فوری فوت میکنن که دیگه نمیشه از احضاشون برای پیوند استفاده کرد فقط ادهه کمیان که با مرگ مغزی فوت میکنند البته این هم یه فرصت خاصه که آدم لحظه از دنیا رفتم میتونه جون 5-6 نفر رو نجات بده اونا رو به زندگی برگردن الان خیلیات تو لیست انتظاره گیرنده که هر کدومشون امیده یه خانواده اونا منتظر بخشش همسال شما هست اگه قلبن راضی هستین این رضایت ما مره امضا کن شما نهایتا یه هفته فرصت داریم هرچی به اگذره یکی یکی از, آز بین میره چه خوب میشه اون زمان تلایی پیوندو از دست ندی حد. رضایت کتبی پدر و مادر الزامیه دیده باقای سایه سمن در حالی که یه عالم شیلنگ یا سمنات کنار دستگاه زنده نگه داشتن تو این چند سال شوهرتون رو ندیدی ببخشید نمیخواستم ناردتون کنم سوروردی شمادی یا جنوبی. جنوبیه در یه خونه باز میشه و یه پسر جوونی که لباس سربازی پوشیده میاد منزل آقای پقایی بله شما کی شونین نوشون مصطفی عمود میشه یا عموم شما منز از سابقه شد اما مصطفاد با شما سندگی میکنه نه با ما نیست کجاست نمیدونم بفرمین تو کی خونه تونه ازدم رفتم از شد اما آقا هست آقا جون رنجور کنار واکرش رو تخت نشسته با شده بیر جای نامده بفرمایید چایی تون سر میشه میگوان زور زده بهش انگار خاطرات زیادی داره برش مروف میشه آخا سال چه سالی سکتی دو سر سالی میشه عزیزم اون من ای بچه خربچه کچوگو تو اتاق کنار اون پسر جوون نشسته که وقتی پسر از اتاق میره بیرون گریه کنون دنبالش میدونه چی بازه اینجا بیان تو پایتون میبیند هرکی اصلا قدمشون سر چش عزیز تا به لیدا میافته خنده رو لباش میناسه سلام سلام آچون حالا که سلام شلاخته ایم مگه میشه نشناسمت بیا برو مهمون حبیب خداست اما تو حبیب خدا نیستی هرکی تو ناکسی زن میزنه درواز می‌کنی؟ سلامت باز خونه چرا اینجوری برخورد میکنی توقع داریم بیام دستباتونم ببوسم به چه قیپاتو گذاشتو خونه ای من مگه چیکار کرده بودم که نباید بیومدم چی چیکار کردی؟ یعنی من بی حیات ندیدم برو برو نزو رثبات کنم نزو شوهرت تو ببرم پاهای لیلا دیگه نا ندارن کنار کوچه دستشون رو گیره به دیوار فقط فقط و فقط نگاه سنگ نگه لیله توی داروخانه علی منتظر منتظرش رو تو بایلشو گرم معلوم نیست اگه کسی زنگ زد برای شنبه هفته بعد وقت بده بگو فقط شاید کنسل بشه متاقبش بهتون خبر میدیم خدافرش بایی از سانسور شیشه ای از یه ساختمان بلند میرن بالا آقای بقایی هم اینجا هستن آقای بقایی؟ آقای مصطفی بقایی نه نمیشتا سامشون لیلا و علی رزا منتظرن لیلا فقط زمین رو نگاه میکنه و علی رزا فقط میگنه جلسه خب اگه قبلا وقت میگرفتین الان اینقدر مطل نمیشده شما سمارو بهشون معرفی کردین بله گفتم ازتون ازخواهی کردن گفتم منتظر بمونن طریقا چی الان دیگه باید تموم بشه. چون نیم ساعت دیگه باید برن جایی قرار شما باسمه هم حتما سعی میکنم تو هفته آینده مجالسشو کنم خدا شما به سلامت سلام سلام داخل اومدم دنبال مصطفا کار باید جب دارم مصطفا ازش خبر ندارم از شوهرت خبر نداری؟ اینجا میخوای حرف بزنی؟ نه اینجا میخوای حرف بزنم اومدم دنبال مصطفا تو اومدی دعوا من میرم به کارم برسم جواب منو بده بعد میگم ازش از خبر ندارم نمیفهمی؟ دارو بیرون اینجا مهد کارمه دروک مگیم چشمتش چی سندگی ما ببینیم آقای محترم دست زن تو بگیر برو بیرون برو بیرون تا زن نزدن به صد و ده خانم هیچون شرایط خوبی ندارن اگه تلفونی نشونی از مصطفی لطفلی معا بده ممنون میشن تو آقای محترم من هیچ اطلاعی از ایشون ندارم اصلا واسه چی اومده سراغ من برای اینکه همسر شما من باید بکی نستم بخورم که مصطفی همسر من نیست خانم شما چند سال منو میشناسی از همه چیز من خبر داری اسم شوهر من چیه چی بگم والا یادی یعنی چی چی بگم چی ازت پرسیدم جوابشو یه در نادر آقا نادر فامیدش بیا بانی از شرکت میره بیرون انگار با پاشنای کفشش داره لیلا رو له میکنه و لیلا هر لحظه بیشتر تو خودش فور میره بله بازخونه ای مادر مصطفی شما چی میخوای از جون ما تو این محل تالا صدای بلند من کسی نشنیده برو نزا صدام بلند کنم برو میریم آج خانم شما بگو آقا مصطفی کجاست ما میریم چی میخوای ازش میخواین جونشو بگیرین خلاص چیین ببینم تو بعد از اینکه طلاق گرفتی کدوم گوری گذاشتی رفتی تو این پونزش نونز ساله کجا بودی چرا یه قیبت زد پس بگه میدونستی اگه بمونی برات بد میشه. اگه حق با تو بود خودتو قایم نمی کردی. پس کنین هاش خانم مگه شما خدای معاکمش میکنی این بند خدا میخواد اعضای بدن و بچهش رو اهدا کنه خودش هم رضایت داده. اما بیمارستان گفته رضایت آقا پسر شما لازمه. شما خودت مادری باید بیشتر درکش کنی. اینم مادره حالا خواهنگ یا کافر مادره دیگه. چندتا بچه زایگه این مادر مادر میکنین. چندتا بچه شیر دادی. چقدر خونه دلخوری تو بچت بزرگ شد؟ اگه خدا رو قبول دارین بگین آقا مصطفی کجاست؟ باور کنین با جونه چند نفر در میونه. بچه‌می چه میتونیم ببینیمش؟ من چه میدونم کجاست. چرت دست سسارم ور نمیداری؟ خدا منو بکوشه دستسرشو با راحت شه. مصطفی خدا بگم چی بکنه که بعد چند سال دستسر من بر نمیذارم. ترافیک خیابون قفل شده. سکوت سنگینی توی ماشینه. اما درد لیلا سنگین از این حرفاست علی فرصت پیدا میکنه که سوالش رو بپرسه ببخشی لیلا خانو اینا چرا با شما اینجوری برخورد میکنم البته من شریعتتون رو درک میکنم ولی به نظرم شما بر جوابشون رو میدادی خیانت کردم نشنیدی دکتر حالا فرصت پیدا کردی فکر نمیکنی الان وقتش نیست به فکر میکنه که کی راست من فقط دارم میشنه من که خودم چیزی ندیدم بتونم بگم حق کیه لیله از ماشین پیاده میشه و بین ماشین راهشون میکشف و میره خانوم نداری خانوم نداری اومده پیش یاسمن دستشو گرفته رو صورت خیصش رو میبوسدش. صدر پیگامک تلفونه. هر لحظه توان لیلا داره کم و کمتر میشه. دیگه پاش جون نداره. قیامت اومده از مشگان که مصطفی کرمانه اما اون شمارهش رو نداره فقط میدونه اسم شرکتش رنگین کمانه و توی خیابون ابو حامد راحت میتونی پیداش کنی باید را هر زودتر با سریعترین وسیله ممکن. لازم تو حواقمون مجموعه میشه یه قرص بخورید. میرسه مقصد اما راه هنوز طولانیه که بند نمید ولی بله. الو علی رزا هم سلام سلام. بیش از 10 زدم. هیچ جوابی کرمان. کرمان. اونجا چه کار می‌کنید؟ به علت شما اجازه نگرفتم. نه، معذرمیدم. سلام. مصطفی کرمانه. تنها می رفتی می گفتی من باید می اومدن من من اومدم این بارستان پیشی آسامن می بونن کانی داشته تماس می گیر لیلا رسیده پشت در شرکت رنگین کمان که بست از تو پولام شد زنگی وایده کناری رو می ببخشید با آقای مصطفی کار داشتم گاهی به قایم ما پیش اجار فروختن شما آدرسی شمایی ازشون داری یکی از همکاران باشون ارتباط داره کوساب کن الان بشش میگویم بیاید لیلا پرسون پرسون میاد یه جایی ظاهرنگ خارج از شهره یه محلی فقیرنشین با دیوارای گلی کوتاه که یه خونه با دیوارای آجوری تر تمیز کنار این دیوارای گلی ساخته شده که لیلا میرسند زنگم نداره این خونه یا اینقدر جدیدی که از برای زنگ نذاشتن یه زن خسته و بیرنگ رو میاد علیه. سلام سلام علیه. ببخشید آقا مصطفی هستن شما از آشناهاشونم هستن شما از بستگانشون هستی من زنشم تازن این جمله رو میگی چشمای یه دور کامل دور خونه و اوضاع احوال زنی زن میزنی. کی این میان نمیتونه زندونه چه دو تا زن کنار بخاری برقی روبروی هم نشستن و زول زدن به هم ویسه مصطفی شما فامیلشه نه خب به چه این که میگن مصطفی نمیگین آ مصطفی 17 سال پیش زنه شد سلش؟ چیزی از من نگفته بود حالا دیگه این زنه بیرنگ رو هم بوکس کرده از شنیدن این حرف خواهده از من از یادش نگفتی واسه چی زندانه من از خاطر بل پروازی چقدر پدهی داره این همیده کنه؟ میخوام دخترش رو ببینه دخترش؟ باید از هم بیمارستان برامون نامه بزنن بدون نامه نمیشه نخیل خانم یعنی من بعد این همه رو برگردم تهران نامه بگیرم؟ نه خانم، بگید فرکس کنن باید امروز ببینمش ایشالا میمیدیش، به محض اینکه نامه رو فرکس کنن؟ پس شو بیمین ساجن نت کنید شماله بیمارستان رو بدید سفر بس دو یک لیله مصطفی من بعد از افتر سال لیلا با دیدن مصطفی از جاش بلند میشه فقط به هم خیره شدن مصطفی هنگار اخمو تو صورتش نقاشی کرده. صفا میشینه و لیلا اما انگار تو همین چند لحظه تمام ماجراهاشونو هاشونو دارن مرور میکنن به هم زدن اما تو ذهن دلشون اتفاقای کوه ندارن زنده میشن یاده بچه گفتی بچه هم که که به دنیا آمدنشو دیدم که حالا بخواهم مردنشو ببینم مصطفا انتظار زیادی از پدری که فقط از امضا مونده اونم چی؟ حالا لیلا میمونه و اسیم خاردارای دیبارای زندونو خرشید خونالود قروب و یه دشت بیده رو بکر دیگه زن مصطفی هم در رو به روش باز نمیکنه. نه اون رفته خرید از دور با پاکت های میوه داره میاد که یهو حب دستش میگیره به دیوار که نیفته لخ لخ کنون میاد سمت در خونه لیلا که میخ کوک شده فقط زل زده بزن خب کمکش اونه اینجا تنها پناه لیلا است انگار تنها پناه زن مصطفی است سلام افتیم دیدمش. چی از روشن. با دست حرفم گوشت رفت. خب چی؟ واسه دیگه. وقتی ازش جدا شدم نذاشتم دختره رو ببینه. انگار حرفاشون این بخاری که از دهنشون بیرون میاد تو خبار نیستش بچه تو بیمارستان سرگردونه به هم دیگر رو ببینه باش حرف میزنی نه من خودم شاکی هم ازش اصلا نمی فور میشه ببینم مقاس خودم بسمه باش صحبت کن شاید تو بتونی رازش کنی چی شدی؟ زن همینطور که پای در وای ساده یه حقش میکنه که نیلی زیر بقلش رو میگیره اینگر تنها پناه این زن هم است لیلا قند توی لیبان آب حل میکنه و میبره سمت زن که زن بی حال اونو پس میزن وارد شوره این زندگی رو ببرن. همه گرفتارم هرکی یه جور یکم فکر باید جد باشه نگاه میکنم و لبخن بزن انگار یاد همین مقای خودشو یاسم انیم جماعته چی میدونم چهار باید دختر یا بسر آرومه دختری فکر کنم چرا تا به دنیا اومدنش نمیری بشه به مادر. زلزل خون و آدم هم غیر مصطفی هیچ کسی ندارم من معلومی تاکیب از زندو ببینه چقدر بده کاره؟ 360 میلیون خونه و شرکت فروخت 170 میلیون چه داده؟ بده کارش واسه چیه؟ بای نفر شریکشو سرساخت سازی. پول قرض کرد تا کارو شروع کنه شریکش که شمه ساویش خالی که گذاشت رفت زلزل زندگی کرد. به نابود کن دلم به مصطفا خوش بود من دکتر میری این طبیل محصوم که نمیخواد بخواست خودش به دنیا بیان تو مسئولی فهمم مصفانی چرا ولی الان تو حاملی نه اون نه بخوام به دنیا بیارمش خوام به اندازه بشه این بجه این وزد چی بناهی کرده میخوای حضرت این روزاتو بخوری چرا مصطفی دلخ گرفتید لیلا به جای جواب لیوان آب قندو میگیره سمت زن اونم لیوان آروم میبره سمت لباس نگاه هر دو تا زن آروم شده و مهربون اصلا با هم, هم. چی کنیم به زنش گفتم باش حرف بزنه چی کنم من نمیخوام ببینمش چرا ببینم این اماده بدبختیه شما کی میگی؟ دیم شب که بفرماد نرسیدم. فردا. باشی کجا؟ نه. خودت هست. دیم بخوابن بخوابه. خودش خون افتاده بی خوابی. میخواب. شب فکرم خواهرم سنت شد اومده پیشم خود رحمتش کنم خدا رفتگان شمارم بیامورد اومدم بگفت فردا میرم ملاقات مصطفا باش حرف بزنم راضی کنم خوهری ازت نیست حالا ما تو توبیم ملاقاتت آزادت میکنه. او بیام چیگاه؟ دلت تاینگه میشه ولی در من تاینگه میشه یه بگه حق داری انگامه ولی حق نداری من بزرکنا تقصیر خودم که نموده خاطر نامردی یکی دیگه این تو خبری نشد ازش نه حال فکری پشیمون میشه میاب بولاد برمیگردونه؟ من از حالت خوبه. خوبه؟ از نمیکنه. ببین اگه گوش نکنی، به یه میدم لیلا برای ما برای چه گذشتی بید نجا خب بیاد به بی این که لیلا زن سابقت بود و به هیچی گفتی حال کار ندارم کار واجب تر دارم تا حالا راحت میتونی به دکاری تو بدی به لیلا بگو ازاد و میفروشم بگو فقط به رضایت شر اگه کار نکنی تو آخر اون بشیمون بشی صد نوت میلیو چجوری میخوای جور کنی بیایی بیرون ها؟ اون رضایتتی نخوا میخوام برای آخر بار دخترتو ببینی هرچی بگی بوشت میدن مصطفی همه ی خشمی چند سالشو انکان میرزه تو مشتشو پرتش میکنه سمت اینکامه اما اگه نگید تلاغ میگرم بچه رو مندازم قلط میکن قلط میکن صابت هم داری مگه من مردم تو خواهر مورد مرد داری؟ بعدی همه مدت بلند شده مدی چجوری حرف نزم؟ چجوری حرف نزمم؟ نگوردم بچه تو نه نمیگرم من همچین چیزی نمیگم بچهی که هیچ وقت ندیدی مرده خودام رحمتش کنه الان به خطر رضایت بگیرم تا حضور بدن شدن به چه نفر خب خونواده و ماهیم برای نجات جونی که می با پول خرش کنن یه سری پولدار دارم هم همین هدیه میدم میره آن تو میگه ت بیا، سری. دیروز هم به پیدا کردم. آه، می‌خواهم به تو. آتش می‌آید، آتش. حالا بازی کری را کن. نیلار زنبو چقدر شکل است و چقدر نشسته است؟ موسفه هم که دستش سیم دست در آب زرمت می‌کشی. بیره دفتر زندون نشسته که تا هنگام مرا میبینه از جاش بولن میشه با منتظر جوابه راه روحای سیمانی زندون بعد بر رازش ما یه شرطی داره هر کارش کردم هیچی چی گفت فقط به خودش میگم شرط میذاری؟ نه تو به زور دلاغ نگرفتی؟ میگه مهریتو نذاشتی اجتر انداختیم سندو هم تلقققم بود هم مهریه زندون افتاده من چی؟ نه حقیق بود بلتماست نکردم لیله تا خیر خیره تو غردم با گرفتم زمین خریدم دستم خالیه به وقت بده دادی بلتماست نکردم لیلا آقلم مهریت قسطی بگیر گرفتی بعد بو بدبختم مجبور شد معاوضه شد سی میلیون هراش بزار نغازه کردم این یه میلیاردم نمیده بداشم افتاد گوشه خونه همینه باسه این بود که بهتون مهری تو طور رو بده گهنزدی به همه چی؟ دهوان ده داختی تو خونمون خوهر برادریم اون از به این بردی هنوز که هنوز نتونستم به بدم. چند وقت نهیدمشون رو نمیشه همه ها قدران إلا حقت گرفتی والله خیلی روح داری حالا ما دیگه چیم طلبکاری رزایت چی میخواید جلی غازیه مثل سهد افتادن ببادلتماس و گیری که لیلا نحکن با من اینکار سنگ شده و دی رزایت دادی نه دادی هم بودی رضایت نمیدادی؟ من طلاق نمی گرفتم های جایی تو بودیم چی کار میکردی؟ میبخشیدم میبخشیدم زندگی مون میکردم به همین راحتی؟ آره. به همین راحتی؟ چون زندگی دوست داشتم خیانت هر زگه نیست؟ حرف موف نزن راجب کسی داری حرف نزنی که خودت بهتر از من میشه ازش بهت نگفتم من؟ دمان میخوام تا بتونم ازش بگرم پنک سال قبل تو اینکه تو شرکت حساب که من اون به اون قطعی بود در شمع قلعدی کردم از او گرفتم اومدن پیشت اعتراف کردم از طلب بخشش کردم بهت نگفتم منو ببخش گفتم یا نگفتم با تو هم درست نه بده آقای آقشتر جواب بده درسته یا نه؟ درسته بگه... بله دیگه نداره خدایت چی بود؟ تو بکه چی بود؟ من خیلی میکشم چرا آدم کشتم مگه؟ آدم کشتی بهتر بود از یاسم چیزی داری؟ اکسی چیزی؟ ملهم همین آخری لیلا دیگه دستش جون نداره تو کیفش دنبال اکس یاسم هم بگرده باز چشش بارونی شد <تصفيق> یکس خودشه با یاسمن کنار دریا مصطفی چشم از عکس بر نمیداره تو اینقدر نامردی ای که حتی نزش تو با بچه ببین حالا وقتشی که بغز 17 سالی مصطفی هم بترک فقط از دخترش یه عکس براش مونده چه میدونم با چه دوزو رو هزانتشو گرفتی باش قیب شد شرط تو بگو. از من بهش چی گفتی؟ گفتی موردن تو چه گفتی به دورو گفتی خیانت کرد کساش رفت مادره حرف رمونده کد که به ام نظره اگه من نبودم که اعتراف کنم یا تو اینقدر آدم بودی که میبخشیدی الان ستایی داشتیم زندگی مونو میکرد من اخری یه روز میفهمد شرفتو بکن دیگه خسته شده اگه من این سو بمونم طلاق میگیره میره بچه ما میدنسه میدنم اخری که این کارو میکنه سد میلیون پول لازم دارم با اینکه که زندگی زندگیمون نجات بده از من میخوای بده کاری تو من بدم تا بدی چرا تو بیدی دیگه نمیخوام تو هیچ کاری بازم بکن اونایی که اعضای آسمانو لازم دارم میدم بچه ما کنم تا تو ببیرو شیش افتن فرق خواهن ازش استفاده کنم برای که زنده باونم جونه 67 نفر 190 ملیون تو هیچ چی نمیارزی باشه بس پشه معامله سر تو چیه تو چرا جوش میزنیم اگه جیب خودت مرحی بدی اونا میدن با رضایت کامل سبابشم بیشتره روح بچه هم شاید نیشه باخران باباشم دوستش داشتم دیدونم دو اونم من دوست داشته میخواستم منو ببینه منم میخواستم ببینمش تو نزاشتی آره بجوزیت داشته هاری بود که ببینه برای همه نمینجا خبستم بایی آخرین بای شرطشی بگی و به خاطر شما آمده باش حرف زدم رضایتش گرفتم خود هیچ چی نمیگی میگی بچه تو تیکه تیکه کن بفروش تو من رضایت بگم جده میگی اینی گفت میگرم لیله خانم میشه یک کاری که اگر تو بخواهی وقت بیشی که همسویام و کلیه سی میلیت محفظ هم مشکل شد هم سواب کرد منم هم میخوام سبب کنم ولی مشکل ندارم چشمه اینگامه میگرزن اگار نفسش دیگه بالا نیمید. میشه نگه داری از ماشین پیاده میشه و راه زمینای خاکی کنار جاده رو میگیره و میره لیلان پیاده میشه که ببینه کجا میره که یهو هنگامی روزانه میشن و شروع میکنه به گریه کردن. پشرو زمین داشت پشرو خب اینجا بمولم نه من به گفتم این شرط بذاره پیش خودم جوری های وقتی خلاص بشم همه گلاده الاما همه مودا خود ما هم گرف داری خدا قصد شدم لیل خانو چه رو پیش درخونه رو بازدام ششی رو گاز با کردم تا خدا بمیرم همه چه خدا ترسیدم گفتم بازدار کنم نمیگزرم اکسی که منو از زرزر نجادم خب وقتی همه مرده موانا چی بازده بمونه نه بداری نه داری لیلا هنگامه رو ره ها میکنه یا سمت ماشین. هنگامه که مبینه لیلا داره میره بلند میشه و مالش را میفته. او بچه که دیگه زنده میشه. او با پولش میشه چند تا مرده رو زنده کرد توبار کی داری کار میکنی آم ماست نداره ای بچه لیلا خرم ناراحت نشی آم بلیت داری زندگی مال قربنی دارد با ماست با زندگی شما چه ربطی به من داره من کجا زندگی شما بودم لیلا خرم لیلا خرم من می‌دونم با دمی میرم هستی نمیدونم بینی تو و چی گذاشته اما میدونم دل رحم دار بیا بزرگی کن من ای جهنم نجاد دوی یه نیزی تو میکنم لیرم دلو به خدا من جهر بس خودم اثیر کردم واسه چی بسه اینکه یک کاری بکنم من همی دل خوشیم و اساس دادم میفهمی؟ آقا زهی بزن بیمارستان بگم چی بگه من شما اینقدر میفروشم میخرید یا نه خب آقا فروشی که نمیخواه بکنی من میفهمم چی به سرد اومده تم بفهم از منو اصلا زهی بزن بیمارستان من بگم تو به امامو زهی بزن لیلا کیفی شو از تو ماشین برمی داره و راه جاده رو میگیره. اونور زندگی ما رو زیر رو میکنه. ای آدم دارم دار کار میکنه. به خدا هیچ کدو شم نیستا. لیلا خانم. <تصفيق> مسافین حالا که وقت رفتن لیلا نگران تر همیشه است پاش نمی دست خالی برگرده بازم بله طلبکارش رو هرزو چجوری میتونم ببینم میخواییم بده ایش بده؟ منو ببر پیشش اینجانی دیرونه فقط شماره شو دارم خب شماره شو بده حسنگا هم بند بده لیلا رو بغل می‌کنه لیلا خانم تو تونتوری تو قانت تا شماره رو بیاره ان خیر ببینه لیلا خانم بفرمایید داخل بگم بگو سف موشگان چهل هشتاد دیویست و, و شماره رو میزنه تو گوشیش اسم موشگان ای این کی موشگانه یه دیگه بگو سف موشگان چهل هشتاد دیویست و خانمی. نه نباید تنها می رفتیم می خواستی حرفای مصطفی رو هم نه من فقط نگران بودم بچه بودم پدر مادرم از دنیا رفته. بله هم نتوشون از اون موقع رو پای خودم بایست دادم عادت دارم به تنهایی برادری خوهری؟ یه برادر دارم که آلمان زندگی میکنه اید به اید دو دقیقه با هم تلفونی صحبت میکنه لیلو در حال ساخت به زحمت پلای های نینه کاره و با بابا آمدن سخته نه؟ به اینجا خیلی زحمت کشیدم به دهیه مصطفی بابا کیه؟ که چیه؟ قبل اینکه پاد به شرکت مصطفی باز بشه اون خیلی دلشو خواست به من تیک بزنه گفتم ببین محل دوستی نیستم اگه اهل ازدواجی بیا جلو گفتم که هم بیگره نمیشنستیم بیا با هم آشناش بشتیم بعد تو پات بمون شرکت باز شد مصطفی از سمت تو منو گذاشت کدر هیچ وقت برون نیواردم تو مصطفی اوکی دادی این که میدونستی با منه نمیدونستم روز اولی که اومده بودی شرکت آخر وقت من با کی میرفتم خونه هر روز صبح به می میومدم با مصطفی هم برمیگشتم اگر شخصی بود که ببره بیاره اون رفت آمده یه یعنی چی؟ تو مصطفای کشوندی سمت خودت اونم من از شرکت اخراجم کرد چون تو ازش خواستی خودت تو به خریت نزن نه نه مقوبه بو که بهش گفتم تو رو استخدامت کنم گفتم دانشجوی احتیاج داری حقوقت تو بیشتر کنم اصلا می درستم. تو باید می آمدی زندگیمو خراب میکردی کی گفت من زندگی تو رو خراب کرده؟ مصطفا همه چه به هم گفت میزنی زیرش؟ مصطفا غلط کرد یادت مصطفا و سرمهری انداخته بودی زندان؟ آزاد کشد اومد سراغه بیکار بود و بدبخت یه خود پول از این ونوار نزول کرد که چکاشو من دادم یه دونه چه که هم ازش گرفتم یه خونه کلنگه بزرگ گرفتیم که با هم بستزم خاک برداری بریم که فرمیدیم یا رو خونه خوله کلو بردار از آب در چه من یکی یکی برگشت خورد مصطفا هم فرار کرد چه کهش پاس نشد با هزار تا بدبختی کارمان پیدا شیردم نصف طلبامو گرفتم انداخت نرستند چه که دو ماهه بدم قبول میکنی چرا میخوای بده اینشو بهش مردی من نیستم فقط پول نقد بسی ملیونشو میتونم نقد بدم همه شو نقد بخونم خونو دارم تو شمال. یه برون قیمت بگیریم بذرم به نامت فقط نقد هر کاری بگی برات تو میکنم فقط میخوام مصطفی دخترمو ببینه اون دیگه مشکل توه دیداخت خمیه بهتر از همیشه از روی پشت بوم ساخته میاد با. پایین تو راهی که بله خمی نادری کجا این شما لطف بکنید سعی تر خودتونو برسونید چی شده دخترز اومد دروس آقا من خدا آقا پدرشون از کرمان تماس گرفتن به زیاده. لیلا برای آخرین بار میاد یا رو ببینه دستشو و پیشونشو میبوسه و ظاهر میزنه اما بیزدا نکنه که یا سمن بیدار شه این سحنه رو نمیتونه تا بیاره و از اتاق میره بیرون لیلا انقدر خسته بود بیجونه که وقتی دست یاسمنو میبره سمت لباش از حال میره و پخش زمین میشه تو راهرو بیمارستان کنار برانکارد یاسمنه و همراهیش میکنه تا دم در اتاق عمل از اون طرف هم برانکارد دختر بچه آبی پوش میرسه که با دستش با پدر و مادرش خدافزی میکنه یا به سرزنین از تحه راه رو میاد پیش علی بسا پشته در آتاقه هموند یه جوی بلند و سرسبز که تا زمین خیلی فاصله داره پای یه درخت بزرگ و پیر هم کلاسی های آسمن و معلماش جمعه دکتورم هست حلی بالای سر لیلا ایستاده لیلا هم روی گلای مزار یاسمن تو اشکاش شنا میکنه زدجه میزنه و چنان دست میکشه و گلا که انگار دارن بدن تکه تکه شده یاسمن نوازش میکنه پیشونیشو میکنه به پیشونی عکس یاسمنو رو هقه هق میزنه دکتر یاسمن هم چشمی گردونه به حطران. همکار لیلا شنه میگیره و از روی قبر بلندش می‌کنه. سلام من و مامان جونم خونه نیستیم لطفا پیام بذاریم حتما حتما با تماس میگیریم خدا تنها همین صدا از یاسمن تو خونه مونده سلام من و مامان جونم خونه نیستیم لطفا پیام بذارید حتما حتما باهاتون تماس میگیریم خدافظ این هزارم باره که انگشت لیلا دیگه کرخت شده از بس این دکمه رو فشار داده سلام من و مامان جونم خونه نیستیم یعنی دیگه اینجا تنها با یاسمن هر چقدر که دلش بخواد بلند بلند میتونه صداش بزنه اما الهه شاه یه کیسی نداره من گفتم یاسمان بیاد پیشم خواست بیاد من اصرار کردم ولی بهت گفتم اون زنگ زده بود وقتی زنگ زدی قسمم داد به نگم پیشم اما من گفتم پس اون کسی مثل دادی چی بود؟ وقتی از مطب رفت بیرون موبایلش رو جاگزاش رفتم از پنجره سلاش بزنم ماشین زد بهش اینگار تمومی نداره. اون سمسو با موبایل یاسمم بر خودم فرستادم اون زنی زد گفت از مدرسه اومده بیرون گفت با امانم دوام شد حوصله نداره. ندارم گفتم بیاد پیشم با هم حرف بزنیم ایشو سانو از مدرسه میمده بیرون. گفتم قدم برای استوجه مائصرار نکن. میرا پاریسی با سمای من برای او صاحبش میده که برسونتش پیش مادرش. برای کوچولو بین اون همه گوسفند میگرده که مادرش رو پیدا کنه. اینقدر از این ور به اون ور میپره که تو گله گم میشه. دارگره دارن از بابا رو میبرن لیلا هم با چشاش داره از دریا خود حافظ میکنه بسم سنگ قبره یاسمن بقایی بهتر از نفس کسی در خستگی‌هایش نفس گیرد هوای زندگی را در تنش جاری کند با من زن و مرد و پسروتشی که ماسک زده سر مزار یاسمن نشستن لیلا که دست هنگام گرفته همراه با مصطفی که یه دستش سینه خورماست و دست دیگهش چند شاخ گل سرخ میان پیش یاسمن مصطفی گلا رو میده به یاسمن کنارش میشینه سلام سلام شما دختر من همیش نسی؟ این دختر شما تو سینم فسلونه خدا رحمت کنه دختر. مصطفی همین که اینو میشنوه اون زانوهاش میچرخه و میره سمت پسر بچه پیشونیشو میبوزن حالت خوبه هموجه هم؟ نه چی؟ ایلیا اجازه میدی. اینجا زمین دیگه سر صدای قلبت گوش کنم سرشو مزاره رو سینه پسر بچه لیلا با چشمای پر عشق فقط لبخند میزنه مادر پسر بچم باقسشو میخواه مصطفا بچه رو نوازش میکنه و از اونجایی که طاقتش تاق شده میره سمت درخت پیر و رو به تنش واییست هنگامه چشم از مصطفا برده میده لیلان میشنه پایین پای یاسمن و دسته گل سرخ مشکی پوشو خلی میده رو اسم یاسمن بقایی یکی میخواد با امروز و این ساعت به بهانه قصه دیگه کنارتون بودیم من ملیه شبانیان راوی و نویسنده این رادیوفیلم فیلم به همراه بزرگواران علی حاجی نوروزی صدا بردار و فرشاد آزرنیا تهیه کننده خوشحالیم که همراهمون کردید تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بدرد